أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما فهرك از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند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 بین تقاتون ف صحمن بالقول فق مع الذي فقل به م وقل ن قلا موف ایزنان شما مانند هیچک از زنان عادی دیگر نیستید اگر پرهیزگاری گاری کنید پس در سخن گفتن در نکنید. که آنگاه کسی که در دلش بیماری است تمع کند و سخن شایسته بگویید وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقم الصلاه واقم الصلاه واتی الزکاه واطعن الله ورسوله انما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا و در خانه های خود بمانید و به شیبه جاهلیت نخستین زینت های خود را آشکار نکنید و نماز را برپادارید و زکات را بدهید و خدا و پیام برش را اطاعت کنید خداوند قطعا می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد و اذکرن ما یتلا فی بیوت من آیات الله والحکمه این الله کان لطیفا خبیرا و آنچه را در خانه هایتان از آیات خداوند و حکمت خوانده می شود یاد کنید بیگمان خداوند باریک بین آگاه است این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین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 و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و عظیما همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان مردان مؤمن وزنان مؤمن مردان فرمان بردار و فرمان بردار مردان راستگو و زنان راستگو مردان صابر، و زنان صابر مردان باخشو و زنان باخشو مردان صدق دهنده و زنان صدقه دهنده مردان روزدار و زنان روزدار مردانی که شرمگاه خود را حف میکنند و زنانی که شرمگاه خود را حف میکنند و مردانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است وما كان لمؤمن ولا قضى الله ورسوله يكون لهم من ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى الناس. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لك الى لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 سنت الله في من قبل امر الله پیامبر در انجام آنچه الله برایش حلال نموده هیچ گناهی مرتکب نشده است این کار سنت الهی است و در باره پیامبرانی که پیشتر بوده نیز صدق می کند و فرمان الله همواره سنجیده و دقیق است الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا همان پیامبرانی که پیام های الهی را به مردم ابلاغ میکنند و تنها از او میترسند و از هیچکس جزو ترسی ندارند و الله برای محاسبه اعمالشان کافی است ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولا كير رسول الله ولا رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء علیم محمد پدر هیچ شک از مردان شما از جمله زید نیست بلکه رسول الله و خاتم پیامبران است و بدانید که الله همواره از هر چیزی آگاه است یا ایوها الذین آمنوا الله ذکراً كثيراً ای کسانی که ایمان آورده اید الله را بسیار یاد کنید و سبیخوه بکرتا و اصیلا و به پاکی بستایید هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِیمًا اوست که بر شما درود میفرستد و فرشتگانش نیز دعایتان میکنند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببرد و الله نسبت به مؤمنان همواره مهمان است تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما تهیت آنان در روزی که با او دیدار می سلام است و برای آنها پاداش ارزشمندی آماده کرده است یا ایوها النبی اینا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و داعیاً الی الله باذنه و تراجا منیرا و دعوت کننده به سوی خداوند به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و بشّر المؤمنین و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلاً كبيراً و مؤمنان را بشارت ده که برای آنها از سوی خداوند فضل بزرگیست و لا تطع الكافرين والمنافقين ودع دع وتوكل على الله و کفا بالله وکیله و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را واگذار و به آنان اعتنائی نکن و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم کسانی من قبل ان تمسسوهم فما لكم عليهن من تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید آنگاه پیش از که با آنها هم بستری کنید طلاقشان دادید پس ادهای برای شما بر آنها نیست که شما آن را بشمارید لذا آنها را با هدیه مناسب بهرهمند سازید و به نیکوترین ترین بچه رهایشان کنید. يا أيها النبي إننا أحلى لَكَ لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت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 قد علمنا ما فرضنا عليهم تی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما ای پیامبر ما هم سرانت را که مهرشان را پرداخت ای برای تو حلال کردیم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 اگر پیام بر بخواهد او را به گیرد این حکم ویجه توست نه دیگر مؤمنان به راستی که ما میدانیم آنچه آنچرا که بر آنها درباره همسرانشان و کنیزانشان واجب کرده این تا بر تو هیچ حرجی نباشد و خداوند آمرزنده مهربان است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 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 به اینکه چشمشان روشن شود و اندوهگی نباشند و همگی از زمانی که عادلانه و آنان اختصاص میدهی خوشنود گردند و الله میداند که شما مردان درباره محبت بیشتر به برخی زنانتان چه در دل دارید و الله دانای بردبار است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 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما اي كثاني كهيمان آورده ايد به خانه های داخل نشوید مگر آنکه برای صرف غذا دعوت شده باشید. بیان که با ورود پیش از موعد در انتظار فرارسیدن وقت غذا بنشینید بلکه هنگامی که شما را فراخندند وارد شوید و پس از صرف غذا پراکنده شوید و سرگرم بحث و گفتگو نشوید.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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا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 و بردگانشان بدون حجاب باشند و با ای زنان از خدا بترسید قطعا خداوند بر همه چیز دواه است این الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوه الذین آمنوا صلو علیه و سلموا بیگمان خدا و فرشتگانش بر پیام بر درود میفرستند ای کسانی که ایمان آبرده اید. بر او درود فرستید و سلام بگویید سلامی نیکو. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا همانا کسانی که خدا و پیام برش را آزار میدهند خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده کرده است. وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبٍ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانَهُ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانَهُ و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هیچ گناهی که مرتکب شده باشند، آزار میدهند به راستی بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‌اند. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ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 لَإِنْ لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْوُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا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 و قتلو تقتیلا ترد شدگانند هر کجا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی کشته خواهند شد سنت الله فی الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْل ولن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلًا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 بیتردید خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش سوزان آماده کرده است. قالیدینشیها ابدا لا ولی که جاودانه در آن خواهند ماند. هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. یوم تقلب فین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 اطعنا سادتنا و کبراءنا و گفتند پروردگارا ما از سربران و بزرگان خود اطاعت کردیم پس ما را از راه بدر بردند و گمراه کردند ربنا آتهم بعفین من العذاب آتیم بعفین من العذاب ول لعنا لعن پروردگارا آنها را از عذاب دوچندانده و آنها را به لعنتی بزرگ و سخت لعنت فرما یا ایوها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیه ای کسانی که ایمان آورده اید مانند ای کسانی نباشید که موسی را آزار دادند آنگاه خداوند او را از آنچه در حق او گفته بودند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و صاحب منزلت بود <Renault> <P Nejhur> <تصفيق> ای, الله قولا <است> ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و سخن درست و حق بگویید يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تا خداوند کارهای شما را برایتان اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هرکس کس که از خدا و پیام برش اطاعت کند یقیناً به کامیابی عزیمی نائل شده است این ما عرضنا عَلَى على السماوات والارض وَالْجِبَالِ والجبال فابين يَحْمِلْنَهَا يحملنها فابين ان يحملنها, ان يحملنها منها وحملها الانسان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 يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور را که در زمین فرو میرود و را که از آن بیرونی آید و را که از آسمان نازل می شود و را که در آن بالا میرود میداند و او مهربان آمر است. و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا و ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فكثاني كافر شده گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد ای پیامبر بگو آری به پروردگارم آن دانای غیب ساگند که حتماً به سراغ شما خواهد آمد به اندازی زرعی در آسمانها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر این که در کتابی آشکار ثبت است لی الذین آمنوا و اولئک لهم مغفرة ورزق کریم تا کسانی را که ایمان آبرده اند و کارهای شایست انجام داده اند پاداش دهد آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است والین و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به می میآورند برای آنان عذابی از کیفر دردناک خواهد بود. و یارا الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هو الحق الْحَقَّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي اِلَى صِرَاطِ و کسانی که به ایشان علم داده شده است میدانند آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند پیروزمند ستوده هدایت میکند وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جدید؟ و کسانی که کافر شدند گفتند آیا مردی به شما نشان دهیم که به شما خبر میدهد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 بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد آیا بر خدا دروغ بسته یا به او دیوانگی است جنون نیست بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند افلم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء و الأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نخطط عليهم مِنَ من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير. آیا به آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آنان از آسمان و زمین است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو میبریم یا تکه ای از آسمان را بر سر آنان می افکنیم بیگمان در این نشانهای برای هر بنده بازگشت کننده است. ولقد آتینا داود من نا یا جبال اویبی معه و الطریر له الحدید و به راستی ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او در تسبیح گفتن هم آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم ان اعملوا ثابتات وقدر في الصرد واعملوا صالحا اني بما تعملون به او دستور دادی که ذره های بلند و فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگهدار و کار شایسته انجام دهید همانا من به آنچه انجام می بینا هستم. ول سليمان ربي حضوه شهر و رواحها شهر و اسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا من عبادی الشکور سلیمان هرچه میخواست جنها برایش میساختند از قبیل معبدها و تمثالها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 یا دابت الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت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 جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طیبة ورب غفور همانا برای قوم سبا در مساكنشان نشانهای بود دو باغ بزرگ از راست و چپ و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گذارید شهریست پاکیزه و پروردگاری آمرزنده واعرضوا فا فاغسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خنط و وشيء پس آنها روی گرداندند آنگاه سیلی ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو باغ پر اشان را به دو باغ ارزش با میبه های تلخ و درختان شور گز و اندکی از درخت کنار مبدل ساختیم ذلك بما و هل إلا این کیفر را به خاطر آن که ناسپاسی کردند به آنها دادیم و آیا جز ناسپاسان را مجازات می کنیم وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىٰن ظاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير سیرو فيها لیالی و ایاما آمینین و میان آنها و قریه هایی که داده بودیم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 هم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق إن فی ذلك لآیات لكل صبار شكور پس گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیافكن و بر ستم کردند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 و یقینا ابلیس گمان خود را در باری آنها درست یافت پس همگی از او پیروی کردند جز گروه اندک از مؤمنان وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن من ممن هو منها في شد و ربک على كل شيء حفیظ و او را بر آنان هیچ سلطه ای نبود مگر اینکه که خواستی معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می از کسی که او از آن در شک و تردید است و پروردگار تو بر همه چیز نگاه است.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 وشفاء عت عیدهو، الا فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير. نزد اوسود نبخشد.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 و اینا او ایاتم لعلا هدن او فی مبین ای پیامبر به مشرکان بگو چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می‌دهد؟ در پاسخ بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم قل لا تسألون ولا نسأل تعملون بگو: شما از گناهی که ما مرتکب شدهیمم باز خاص نمیشوید و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید باز خاص نمی نمیشویم. وَلَيَجْمَعَنَّ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد میآورد سپس در میان ما به حق داوری میکند و او داور داناست قل الحقتم به شرکا. كلا بل هو الله الحكيم بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق اید به من نشان دهید هرگز چنین نیست بلکه او خداوند پیروزمند و حکیم است وَمَا ما ارسلنا که الا که فتل لناس بشیرا و نذیرا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. ما تو را برای همه مردم جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم ولیكان بیشتر مردم نمیدانند ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقین و میگویند اگر راست گویید این وعدهٔ قیامت كی خواهد بود بگویی یوم لا تستاخرون عنه ساعته ولا تستقدمون. بگومی عاد شما روزی خواهد بود که نساعتی ساعتی از آن تأخیر می کنید و نبر بر آن پیشی می گیرید. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اتُبْعِفُوا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 به کسانی که استکبار و سرکشی نمودند گویند اگر شما نبودید ما قطعاً مؤمن بودیم قال الذين استكبروا للذين اضضعفوا ان نحن عن الهدى بعد ان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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا ان نذكر بالله ونجعل له أندادا وآسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاضلال في اعناق الذين كفروا هل يجذون الا ما كانوا يعملون فمستزفان بمستكبران غويان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 آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود و ما ارسلنا في قرية من نذیر الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون ما در هیچ قریه ای هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر اینکه متنعمان آنها که مست ناز و نعمت و قدرت بودند گفتند بیتردید ما به بی آنچه فرستاده شده اید کافریم نحن اکثر اموالا واددم وما نحن ب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 تُقَدِّمُكُمْ عِنْدَنَا ذُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا فا لهم جزاء الضحف بما عملوا وهم فی الغروفات آمینون و انبالتان و اولادتان چیزی نیستند که شما را نزد ما نزدیک و مقرب سازند جز کتانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند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 و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوف میآورند اینان در عذاب احزار میشوند قل این ربی عبت قرز طالی من یشاء من عباده و له و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه و هو خیر الرازقین ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ میگرداند و یا برای او تنگ می سازد و هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید پس او عوض آن را می‌دهد و او بهترین روزی دهندگان است و یوم یحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ها اولئك ياكم كانوا يعبدون و به روزی را که خداوند همه آنان را برمیانگیزد سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را پرستش می کرده و قالو سبحانک انت ولینا من دونهم بل كانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون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 پس امروز برخی از شما برای برخی دیگر مال هیچ سود و زیانی نیست و به کسانی که ستم کردند میگوییم بچشید عذاب آتشی را که را تقزید میکردید و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل یرید ان يصدكم قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وقال الذين كفون الحق جم ان هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ به هنگامی که آیات روشن ما بر خوانده شود گویند: این محمد جزمردی نیست که میخواهد شما را از آنچه نیاکانتان میپرسیداند باز دارد و گویند: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 وما ارسلنا ایلیهم قبلك من نذیر. و ما پیش از این چیزی از کتابهای آسمانی را به آنها ندادی که آن را بخوانند و بر اساس آن تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ هشدار دهندی ای به سوی آنها نفرستادیم و کذبالذین من قبلهم وما بلغوا بلغو محشار ما آتیناهم فکذبو رسولی فکیف کان و کسانی که پیش از آنها بودند نیز پیام ما را تکذیب کردند در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنها داده بودیم نرسیده اند آنگاه آنها پیامبران مرا تکزیل کردند بنگر مجازات من چگونه بود قل اینما اعبکم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفکرو ما بصاحبكم.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 او برای شما جز خشدار دهندی ای پیشا پیش عذاب شدید نیست قل ما سألتکم من اجر فهو لكم ان اجریه الا على الله وهو على كل شيء شهید ای پیامبر بگو هر مزدی که از شما خواستم. پس آن برای خود شما باد، پاداش من تنها بر اهده خدا است، و او بر همه چیز گواه است. قل این ربی یقذف بالحق علام الغیوب ای پیام بر بگو، بیگمان پروردگارم حق را بر قلب پیام بران خود می افکند، آن پروردگاری که دانای قیب هاست. قل جاء الحق وما یبدء الباطل وما یعید ای پیام بر بگو حق آمد و معبودان باطل نه آفرینش را آغاز میکند و نه دوباره باز میگرداند قل این ضللت فا اینما على نفسی و این فبما فبیما یوحی ایلی ربی اینه سمیع قریب ای پیام بر بگو اگر من گمراه شوم تنها بر زیان خودم گمراه میشوم و اگر هدایت یابم پس به خاطر آن چیزی است که پروردگارم به من می میکند یقینا او شنوای نزدیک است و لو ترا فذع فلا فوت واخذوا من مكان قريب و ای پیامبر اگر ببینی هنگامی که مسترب و نگران شوند آنگاه رهایی از عذاب نباشد و از جای نزدیکی گرفته شوند تعجب خواهی کرد و قالوا آمنا نبی و انا له متناوش من مكان بعید و در آن حال گویند به آن قرآن ایمان آوردیم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 و میان يشون كما و آنچه میخواستند جدای افکنده شد همان گونه که از پیش با امسال آنها انجام شد. بیگمان آنها سخت در شک و تدید بودند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسلا اولی جنحة مثنى وثلاث ورباع. یزید فی الخلق ما یشاء این الله علی كل شیء قدیر و ستایش مخصوص خداونده است آفریننده آسمانها و زمین کتی که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سگان و چهارگانه هرچه بخواهد در آفرینش نشمی افضاید، بیگمان خداوند بر هر چیزی تواناست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و هو العزیز الحكيم.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 هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ای مردم نعمت خدا را بر خود به یاد آورید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 و اگر تو را تقذیب کنند غمگین نباش، همانا پیام پیش از تو نیست تقذیب شدند، و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. یا ایوها الناس ان وعد الله حق، فَلَا تغرنكم الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنَّكُمُ بِاللَّهِ الغرور ای مردم، یقینا وعده خدا حق است پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد إن الشَّيْطَانَ لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعیر مسلمن شیطان دشمن شماست پس او را دشمن گیرید او فقط از پیروانش دعوت می تا همه از اهل آتش سوزان جهنم باشند الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شَدِید وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 آیا کسی که کردار بدش برای او آراسته شده پس آن را نیک و زیبا می‌بیند همانند کسی است که چنین نیست پس بیگمان خداوند هر کس را که بخواهد گمراه میسازد و هر کس را که بخواهد هدایت میکند، پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف و حسرت برانان از بین برود بیشک خداوند به آنچه انجام میدهند داناست. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور و الله کسی است که باد را فرستاد آنگاه آن باد ها را خارا برمی انگیزد پس آن ابر ها را به سوی سرزمین مرده راندیم آنگاه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم برانگیختن مردگان از گور خانیز چنین است مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِذَّةَ فَلِلَّهِ الْعِذَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمر الا فی کتاب این نذالک علی الله یسیر و خداوند شما را از خاک سپس از نطفه آفرید انگاه شما را جفتهای یک دیگر قرار داد و هیچ ماده ای باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و هیچ سال خرده ای عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه در کتاب لوح محفوظ ثبت است. بیگمان گمان این کارها بر خدا آسان است.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 و تغلفو الكفیه مواخر لتبتغو من فضله و لعلكم تشکرون و آن دو دریا یکسان نیستند این یکی آب شیرین و گواراست که نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ است و از هر دو گوشتی تازه می خورید. و از آنها چیزهایی زینتی بیرون میآورید آورید که می پوشید و کشتی را در آن دریا می بینی که آبها را میشکافت و به سوی مقصد فیش پیش می رفت تا از فضل خدا روزی به جوید و شاید که سپاس گذارید یون جن لیل و هارَ فيِي الليل وَسَ الشتَ وََلُ قَمَرَ كلُّ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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر اگر آنها را بخانید صدای خواندن شما را نمیشنوند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 ای مردم، شما همگی به خدا نیاز مندید و تنها خداونده است که بی نیاز ستوده است و بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و آفرینش تازه ای می آورد وما ذلك على الله بعزيز وإين كار بر خداوند دشوار نیست ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم وَأَقَامُ واقاموا وَمَنْ ومن تزكى فانما تزكى لنفسه والى الله المصير فهیچ کس بار گناه دیگری را بدوش نمی کشد. و اگر شخص گرانباری دیگری را برای حمل بار گناه خود بخواند، چیزی از آن بار برداشته نمی شود هرچند خیشاوند نزدیک او باشد تو ای پیامبر تنها کسانی را هشدار می دهی که از پروردگارشان در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هرکس پاک گردد و تقوا پیش کند پس بداند که تنها به سود خیش پاک شده است و بازگشت همه به سوی خداست و ما یستوی و بینا هرگز برابر نیستند و لا الظلمات و النور و نه و نور ولا الظل ولا سایه و لا الظل و سوزان و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 نمی توانی سخنت را به درگور خفتگان بشنوانی این انت الا نذیر تو جز حشتار دهنده ای نیستی اینا ارسلنا بالحق بشیرا و و من ام یقینا ما تو را به حق بشارت دهنده و هشتار دهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر آن در میان آن هشتار دهنده ای آمده و گذشته است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 و اگر تو را تگذیب کنند چیز تازه نیست همانا کسانی که پیش از آنان بودند نیست پیامبران خود را تگذیب کردند. پیامبرانشان با دلایل روشن و نوشته ها و کتاب روشنگر به سراغ آنها آمدند. ثم أَخَذْتُ الذين كفروا فكيف كان مكين پس کسانی که کفر ورزیدند فرو گرفتم پس بنگر مجازات من چگونه بود الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها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 و از کوحانیز راه به رنگ سفید و سرخ رنگارنگ و به غایت سیاه پدید آوردیم و الناس والدواب الدواب مختلف الانعام مختلفن الوانه کذالک انما یخش الله من عباده العلماء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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا يرجون تجاره لن تبور بیگمان ان كسانك كلام خدا را تلاوت میکنند و نماز را بر پا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 تا خداوند پاداش آنها را به تمامی بدهد و از فضل خود بر آنها بیفزاید بیگمان او آمرزندهٔ سپاسگزار است والذی اوحینا الیك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدو ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ پاداش آنها باغ‌های جاودان بهشتی است که به آن وارد می‌شوند در آنجا به دستبند های از طلا و مروارید آراسته می و و لباس هایشان در آنجا حریر است. و الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور و گویند حمد و ستایش مخصوص خداوند است که اندوه را از ما دور کرد یقینا پروردگار ما آمرزندی سپاس گزار است الذی احللنا دار المضامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب همان کسی که از فضل خیش ما را در این سرای اقامت جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمیرسد و در آنجا هیچ خستگی به ما نمیرسد. و الذين كفوا لهم نارجهن مما لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 که برای ستم کاران هیچ یاوری نیست. این الله عالم غیب السماوات والأرض، انه علیم بذات الصدور. بیگمان خداوند دانای نهان آسمان ها و زمین است، و همان او به آنچه در درون سینه هاست داناست. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 کسی جز او نمیتواند آنها را نگه دارد بیگمان او برد بار آموزنده است و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن نه اهدا من احدا الامم فلما جاءهم و کفار قریش با محکم ترین سوگند هایشان و با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که اگر خشتار دهندهای ای برای آنان بیاید از هدایت یافته ترین امتها خواهند بود پس چون پیام بر خشتار دهنده ای بر آنان آمد جز فرار و نفرت از حق چیزی بر آنان نیافزود. استكبرا في الأرض ومكة السيء ولا يحيق المكة السيء إلا بأهلها فهل يظن إلا سنة الأولي. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله اینها به خاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بدشان بود و نیرنگهای بد جز دامنگیر صاحبانش نمیگردد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 پس هنگامی که عجل آنها فرار سد خداوند به بندگانش بیناست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یاسین يا سین. والقرآن الحكم سوگند به قرآن حکیم اینک لمین المرسلین که تو قطعاً از پیامبران ما هستی علی صراط مستقیم و راه راست قرار داری تنزیل العزیز الرحیم این قرآن فرو رستاده خداوند پیروزمند و مهربان است لی تنذیر قومم ما انذیر فهم غافلون تا گروهی را هشدار دهی که نیاگانشان هشدار نیافتند پس آنان غافلند لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون راستی فرمان الهی بر بیشتر آنان تحقق یافته است پس آنان ایمان نمی آورند انا جعلنا فی اعنافهم اغلالا فهی الى الأبقان فهم مقمحون بیگمان ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم پس آن قلها هاست لذا سرهایشان را بالا نگاه داشته است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 وسواء علیهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ای پیامبر بر آنان یکسان است چه آنها را هشدار دهی و یا هشدارشان ندهی ایمان نمیآورند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 و اضرب لهم مثلا اصحاب القرية از جاء المرسلون. مرسلون ای پیامبر برای آنها مثال و داستان مردم آن قریه را بزن چون رسولان ما به آمدند اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّذْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوَ فَقَالُوَ اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ آنگاه که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم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 و بر اوته‌ی ما جز رساندن پیام آشکار نیست قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب الیم. آنها گفتند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 وجاء من اقص المدينة رجل استع قال يا قوم التبع المرسلين. و مرد مؤمنی از دور ترين نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت: ای قوم من پيام بران خدا را پیروی کنید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 و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است همه به سوی او باز گردانده می شوید من دونه آلهتا این یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون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 که پروردگارم مرا آمرویده و از گرامی شدگان قرار داده است